سلام و درود خدمت شما دوستای خوبم در خدمتتون هستم با یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی موضوع این هفته پادکست ما بزن ببینم خودتون میتونید موضوع رو حد بزنید آغاز سال نام آشان همونطوری که حتما حد حت زدید موضوع این هفته پادکست ما به بازگشایی مدارس و فصل مدرسه رفت داره. فکر می کنم اکثر ما با شنیدن اسم پاییز و اول مهر یاد مدرسه میفتیم حالا چه خاطرات خوب چه خاطرات بد. اما مسئله که به صورت اختصاصی میخوام در مورد صحبت بکنم امروز مسئله حق تحصیل به زبان مادری هست امروز توی برنامه مهمون دارم آقای دکتر آزاد مرادیان که ایشون دبیر کمیته کرت مغیم آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران هستن ایشون همچنین عضو انجامن روانشناسان خانواده در آمریکا هستن من یه مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم بعدم میریم و میشنویم مصابعی رو که من با آقای دکتر مرادیان انجام دادم این قسمت یه مقدار طولانی تر شده مثل که من از پنج دقیقه شروع کردم بعد همینجور هر قسمت داره طولانی تر میشه سعی میکنم که تو همین حد نگرش دارم و هر هفته ده دقیقه اضافهش نکنم ولی واقعا صحبت آقای دکتر خیلی جالب و شنیدنی بود و برای همین دلم از چیزی رو حس بکنم و مسابر رو به صورت کامل برای شما اینجا گذاشتم اشاره کردم به زبان مادری در ایران بعد نیست که قبل از اون یه پیزمینه هم برای شما بگم که طبق اصل پانزده قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسبی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است اصل 19ام قانون اساسی ایران هم اشاره میکنه که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. آقای روحانی که رئیس جمهور فعلی ایران هستند در زمان انتخاباتشون وعده داده بودند که اگر رئیس جمهور بشن حق تحصیل قومی در اقلیت‌های قومی در ایران به زبان‌های مادری خودشون رو ممکن می کند همچنین آقای علی اسقر فانی وزیر آموزش پرورش در تاریخ 11 مهر 1392 اعلام کرد که زبان، تدریس زبان قومیت ها در مدارس در اولویت برنامه های او قرار دارد. از, از همه مهمتر خبرگزاری ایرنا، گزارش داده بود که تعلیف محتوای کتب درسی دانش آموزان به زبان کردی در دست اقدام است. بنشته ایرنا در صورت آماده شدن محتوای این کتاب تدریس آن به زودی آغاز میشه. خبر دی دیگر در این زمینه این هست که آقای مهدی نعیمی اردبیلی مدرس سابق زبان ترکی آذربایجانی در دانشگاه‌های کشور به سایت دویچواله اینطور گفته که در ماه‌های اخیر این مقوله مسئله زبان مادری در مورد زبان کردی تا حدودی جدی‌تر شده و رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان ایجاد شده حتی علاوه بر آن در دانشگاه‌های دیگر استان کردستان به صورت دو واحد درسی نیز قابل ارائه هست همچنین خبرگزاری معتبر جمهوری اسلامی ایران نیز بخش کردی خودش رو تأسیس کرده. از طرف دیگه وبسایت کردی فارسی روانگه تلا داده که خبر رو منتشر کرده در ارتباط با اینکه در مدرسه صلاح الدین ایوبی در شهر ساقز استان کردستان طی مراسمی از کتاب آموزش زبان کردی رونمایی شد. این بود مقدمه ای از تدریس و تحصیل به زبان مادری در ایران میریم که صحبت‌های آقای دکتر مرادیان رو در این زمینه داشته باشیم و اطلاعات بیشتر رو از زبان ایشون بشیم خب دکتر جان خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی در وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. سلام عرض می کنم خدمت شما دوست عزیز فرزان عزیز و خدمت شنوندگان برنامه پدکست شما. دکتر جان اونجور که می دونید چند روزی هست که یکی دو روزی هست که ماه مهر شروع شده و مدارس هم در ایران باز شده. به وان شروع دوست دارم از شما بپرسم که چه خاطره ای شما وقتی که به, به ماه مدرسه و ماه مهر فکر می کنید اولین خاطره ای که به ذهنتون میرسه چی هست خب بذای من از همینجا دوستایی که فرزنداشون به مدرسه میرن خصوص خناده هایی که الان این برنامه شما رو گوش میدن و فرزند خردسالی دارن که وارد مدرسه میشه بهشون تبریک بگم ولی خب مهندسین هم برنامه شما رو میشنم به همین ترتیب وارد دنیای دیگه میشن که اون دنیا آینده ای هم خودشونه و هم آینده ای که در جامعه که درون زندگی میکنن قطعا شکل میده و در دست سه انس. شاید این موضوعی که الان مطرح کردید بی ارتباط با موضوع دیگه ای نباشه که قرار هستش و شما فرمودید که روی اون صحبت کنید. من یادم اولین روزی که مدرسه رفتم خب من پیشترم ازش ارز کنم از منطقه کردستان ایران هستم و از در شهرستان سغس و خب اون دورهی که من زندگی می کردم یعنی سالای قبل از 1350 شمسی یا خورشیدی که میشه شوده سالای 1970 در اون موقع هیچ نوع وسیله حالا تفریحی دیگه غیر از انظر خونه میگم مثلا تلویزیونی در خونه ما وجود نداشت ما یادم تنها وسیله ارتباطی ما بی با بیرون غیر از مثلا دوستایی که می اومدن برنامه‌های قصه خانی مثلا هفتگی بود غیر از اون رادیو بود یعنی تنها وسیله ارتباطی ما با خارج از محیط شهرمون رادیویی بود که اون رادیو هم معمولا تو برنامه کردی داشت از رادیوی تیران بود و رادیوی بغداد هر دو به زبان کردی نیم ساعت در روز برنامه داشتن و من در یه جای زندگی میکردم که همه به زبان کردی صحبت خب و, و بعدا پدرم تحصیل کرده بودن در اون خودشون خوهارم یه مدار تحصیل کرده بودن ولی بیشتر تعمه اصلی خانواده زبان کردی بود و خب من بعد از 6 سال برای اولین روز وارد مدرسه شدم هم در شهرستان سرغز. و اولین چیزی که معلم از روی کتاب درسی خوند این بود که آموزگار به دانش آموزان لبخند زد. خب من مجموعه کلمات فارسی که تا یاد گرفتم کنار همدیگه گذاشتم و خیلی برام عجیب بود که چه آموزگاری که این همه قرار با محبت باشه و مسر همه چیزای خوب باشه به دانش دانشاموز... آموزان رو زده حالا کلمه یه لبخند رو من معنیشو نمیدونستم و فکر می که فکر می کردم که دانش آموزان حتما کاری بدی کردن و خانم معلم <تصفيق> لبخند زده و باور کنید این موضوع تا شاید کلاس دوم و سوم هم با من بود و همیشه این سوال رو داشتم که خب اگه قرار چیزی زدنی باشه چرا خانم معلم میخواد دانش آموزان رو بزنه <تصفيق> این بس هنوزم با من بود و من سال هم در بحثایی که هستم مورد زبان مادری و نقش زبان در مناطقی که اقوام و ملیتای دیگه ای دارن زندگی میکنن که با زبان رسمی یکی نیست. این مثال رو همیشه زدم و همیشه هم روز اول مدرسه به یاد همین شاید اشتباه تاریخی که من افتادم. تصویر من رو از معلمی مادر دیگریمون که اول مدتها من بیادیم. مثال میوفتم حالا انشالله که دوستان دیگه اینو بانوان لبخند رو بفهمند و فکر نکنند که معلم داره اونا رو میزنه می خب خیلی جالب بود که خاطره اول شما مستقیم رفت سر اصل مطلبی و موضوعی که قرار هست در موردش حالا صحبت بکنیم اشاره کردید به آموزش زبان مادری آقای روحانی که رئیس جمهور فعلی ایران هست در زمان انتخابات وعده دادن که وقتی رئیس جمهور بشن این آموزش زبان مادری رو در مدارس, و در مدارس کشور شروع میکنن. آقای مهدی نعیمی مدرس سابق زبان ترکی هم در خبرها اعلام کردند مصاحبه‌ای که باهاشون شده بود در سایت دویچه وله هم منتشر شده بود رشته اشاره کردن که رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان ایجاد شده می‌خواستم از شما پرسم اگر در جریان هستید وضعیت کنونی آموزش زبان مادری حالا زبان کردی برای مثال در ایران در حال حاضر بشه صورت آیا اون وعده‌هایی که داده بودن عملی شده یا نه ببین دو تا موضوع اینجا مطرح هستش که اگه حالا این سال یا سال بعدی که بخوای اصلا در مورد موضوع زبان و این کنزر ریشه روانشناسی رشد کودک و روان رمان رشد روانشناختی کودک زبان چه جوری شکل می گیره و چه جوری میاد به حال به عنوان یکی از وسیله های اصلی زندگی فرد قرار میگیره روی میشه روی سال بعدی من خوشحال میشم که روی بدن و این مسئله توضیح بدم ولی روی بحثی که الان مطرح کردید درسته این ببینید توی قانون اساسی ایران و قانون اساسی که بر هر حال خود اعضای در رأس حکومت ایران هستن همیشه بهش اعتقاد داشتن علظاهر یعنی اصول 15 و 9 قانون اساسی روی مسئله تاکید میکنه که زبان و آموش زبان مادری باید در رأس برنامه های آموش و پرورش ایران قرار بگیره طبعا. و این موضوع از به اصلاح بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی همیشه بوده و خب خیلی از کسایی هم که سر کار اومدن در همه ی حیطه چه به دوره ریاست جمهوری بوده و چه دوره نخست وزیری در دوران آقای موسوی همه روی مساله تاکید کردن که ما اصول قانون اساسی و اصل 15 و نوزه قانون اساسی رو اجرا میکنیم. خب وزرا هم همین موضوع رو گفتن. آقای روحانی هم خارج از این موضوع صحبتی نکردیشون هم گفته که این اصل 15 و نوزه اساسی رو اجرا میکنه. بحثی که اینجا هستش که این این موضوع هستش که این اصل پونزه و نوزه بر دو موضوع تاکید داره. یکی آموزش زبان مادری هستش، یکی آموزش به زبان مادری هستش یعنی اینکه ما بخوایم زبان مادری رو در اون مناطق بخوایم تدریس کنیم و به حال اگه یه فرزندی در اون منطقه فرزند زبانی هستش در اون منطقه که زبان کردی رو در خونه داره صحبت میکنه موقعی هم که میاد در دبستان قرار میگیره در دبستان هم بتونه حالا اونجا اگه تونسته صحبت کنه اینجا بیاد به صورت نوشتاری یاد بگیره چهجوری زبان کردی رو یا زبان آزری یا ترکی یا زبان عربی رو بخواد بنویسه این, این بهش میگن آموزش زبان مادری ولی اینکه آموزش رو به زبان مادری انجام بدن یه بحث کاملا جدایی هستش یعنی اینکه دروس و کتبی که در حال آزب در مدارس کل کشور داره تدریس میشه این کتاب ها در تا یک مقتی به زبان اون منطقی باشه که داره تدریس میشه و بعد از یه مقدهی برگرده و بیشتر اون متون تبدیل بشه به زبان رسمی کشور که زبان فارسی هستش یعنی این دوتا موضوع رو باید در نظر داشته باشه بحث دیگه این هستش که بیشتر کسایی که به نظر من بیشتر روانشناسان کودک و بیشتر کسایی هم که باور به مسائل حقوق بشر و حقوق فرد دارن مازادی های فردی دارن همه روی این موضوع تأکید دارن که آموزش زبان و حتی آموزش زبان مادری باید در مقطع تحصیلی قبل از ورود به دبستان یعنی در دوران پیش دبستانی باید صورت بگیره در دوران دبستانی هم به همین ترتیب. موضوعی که الان شما مطرح کردید و ادعایی که بسه مسئولین آموزش عالی و آموزش پرورشی مطرح کردن این موضوع هست که اومدن و در دوران دانشگاهی یکی از دروس رو آوردن شروع کردن و قرار هستش در مثلا دانشگاه کردستان در سرنده اینا بیان یکی از دروس رو به نسبت دروس دوران لیسانس یکی از دروس رو بانوان زبان کردی بذارن و این درس یه درس اختیاری هستش افراد میتونن برن این رو بگیرن مثل زبان, زبان و عدبیت فارسی که قطعا شما در جریان هستی در ایران بانوان 23 واحد درسی جز اون دو روز هستش مثلا درس ورزش نمیدونم و های انقلاب اسلامی این جزء 23 عادی هسته که این درس هم بنا به درس اختیاری در قرار هستش در دانشگاه‌های ایران گذاشته بشه به این صورت هم مطرح کردن که در مناطق دیگه این موضوع رو قرار اجرا کنه این خودش در عرض کردم این هیچ نوع ارتباطی میتونه نداشته باشه با این موضوع آموزش زبان مادری یا آموزش به اصل آموزش به زبان مادری درست. من جدیدن در چند ماه گذشته در یکی از مناطق کردستان در شهر سرنقس که زادگاه منم هستش اومدن یکی از دروس رو در به عنوان یک درس جانبی مهم. یکی از دروس رو آوردن و همزمان به زبان کردی هم ترجمه شده دانش آموزان میتونن این بخش از زبان رو بخش کتاب رو به زبان کردی بخوند. این در دانشگاه در... هست یا در مدرسه این؟ این در مقته مفته... در ابتدایی. درست و این رو شاید به عنوان یه کار تجربی شروع کردن و این کار تجربی هم هنوز معلوم نیستش به واقع ادامه داره و این برای اولین سال هسته چه این کتاب در همین شهرستان سقصی عرض کردم ترجمه شده و این موضوع یه چیز تازهی هستش ولی در این حال ارز کم خدمتون کل این سی حالا سه سالی که جمهوری اسلامی در سرکار هست سی چهار سال که جمهوری اسلامی سرکار هستش هیچ وقت اجازه به این نداده که ام، آموزش به زبان مادری صورت بگیره و اگر برحال کشدار و مریض اومدن موافقت کردن که بیان و زبان مادری رو در بعضی از مقاطع تحصیلی در یک دوری مشخص بیان انجام بدن هیچ این به صورت یک برنامه متداوم و برنامه دنبالداری نبوده و تابع شرایط سیاسی و تابع شرایط اجتماعی جامعه بوده یعنی الان شما در نظر بگیرید وضعیت کردها و مسئله جنبش سیاسی و مدنی و عدالت خواهی و حتی استقلال تلبی کردها در همه منطقه خوابرمیانه قطعاً بی تأثیر نبوده روی اینکه که جمهوری اسلامی رو بادار کنه که یه سری امتیازات رو در زمینه آموزش به زبان مادری رو در اون مناطق ایجاد کنه در منطقه آزربایجان هم به همین ترتیب دنبال این موضوع هستن که بتونن در دو مقطع اجازه بدن که بخشی از کتابهای درسی که همون کتاب ادبیات فارسی هستش بخشی از اون رو بیان به صورت زبان آذری به یکی بخشی از ادبیات آذری رو در این کتاب ها بگنجونند این به نظر من کردم نه جوابگوی اون اصل 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که خود اونا این رو سالها بهش اعتقاد داشتن و به اصطلاح خودشون همه کاری که انجام میدن در جهت اجرای قانون اساسی هستش که برحال این موضوعی که خودشون مطرح میکنن، هم برخلاف اون اصول هستش و هم در این حال هم برخلاف همه اصولی هستش که ما چه در زمینه حقوق بشر و حتی چه در زمینه مسائل تخصصی که ارز که این اگه اجازه بفهم می, می روید بحث همین موضوع زبان و رشد زبان و رشد شناختی کودک و چرا زبان مادری میتونه نقش اساسی داشته باشه در رشد روانی و شناختی درست. من اینجا برای اطلاع اونایی که برنامه رو گوش میدم باید بگم که این خبری که شما گفتی در رابطه با تدریس یک کتاب در سقز این خبر رو وبسایت سایت کردی فارسی روانگه هم گزارش داده بوده که در مدرسه صلاح الدین عیوبی سقز در استان کردستان از این کتاب رونمایی شد و همونجور که شما گفتین یه کتابی هست این فکر می‌کنم تنها مدرسه‌ای هست که در مناطق کوردنشین الان این کتاب تدریس میشه درسته بله اینو هر کیم به صورت آزمایشی اومده تا الان هیچ نو من شخصا از مدت از افراد خانواده یا دوستانی که در سقز هستن هیچ نو ارزیابی از این کتاب رو دیدم که این کتاب تا چند اندازه داره تدرییس میشه همین تا چه معتون گفتم ببینید این احتیاج به زیر ساخت داره مم. یعنی شما اگه بخواید حتی زبان مادری رو بخواید تدریس کنید احتیاج به این هستش که از, از اون شکل گفتاری و کلامی که زبان در, اون مخ... در شهر سرقز داره اه اه اه یا به اون گویش سرگزی که مردم با آن دیگهدار صحبت میکنن ایناگه بخواد به صورت مهارت در خواندن و نوشتن و یا آشنایی با ادبیات زبان کردی باشه اتیاج به کارهای پژوهشی خیلی بیشتری داره و قطعا باید از مراحل پایین تر این شروع کنن درست. من یادمه در چهار سال یا پنج سال گذشته یکی از مدارس یا مهد کودک های شهرستان سنندج اقدام به این کرده بود که از مخته پیش دبستانی اینا اجازه یه مهد کودک رو گرفته بودن از آموزش آموش پرورش و قطن اداره اماکن استان کردستان و قرار بود که بچه های پیشتبستانی رو در اون مهد کودک اینا بیان آموزش بدن روشی که اینا انتخاب کرده بودن این بود که به اینا بیان و زبان کردی رو آموزش بدن درست. خب هیچ نوع قانونی وجود نداره که مخالفت کنن که این به اصلا مرکز آموزشی نتونه زبان کردی رو به این آموزش بده اینا شروع کرده بودن به روش های مختلفی که این مرکز رو بمندن از جمله این بود که هیچ نوع سوبسیدی به این مرکز ندن دلست. حتی مثلا سوبسیدهایی که من یادم دوستان تعریف میکنن در زمینه این که بهشون اجازه مثلا گاز کشی به اون مهر رو ندن یعنی که آه. اگه یا غذای رایگان یا غذای مجانی رو که قرار بود به این معركز داده بشه اینا جلوگیری کردن طوری شد که تا این مرکز بسته شد و این وجود داره یعنی این موضوعی که الان شما مطرح کردید و خبر رو هم برای دوستان خوندید خب ببینید این مثل این که شما از وسط راه چیز رو شروع کنید و اینا هیچ نوع زیرساختی برای این زبان کردی نداره درست یه سوالی که حالا اشاره کردید که این میگه مسئله بوده که خب حالا از اول روی کار اومدن جمهوری اسلامی بوده اگر شما اطلاعی دارید در این زمینه که در زمان قبل از جمهوری اسلامی اصلا این مسئله به چه صورت بوده خیلی کوتاه توضیحه و اینکه سؤال اصلی من در واقع این هست که این چه مشکلی داره یعنی آموزش زبان مادری حالا به کردها یا به ها یا به, به لورها اقوام ایرانی این چرا اینقدر سیاسی تو ایران حالا بگذاریم که هر اتفاقی حتی مثلا فعالیت برای دریاچه ارومیه و مثلا یک فعالیت برای زیست محیطی هست دیگه چرا این فعالیت ها اینقدر سیاسیه و چه مشکلی هست مثلا اگر شما به عنوان یک کورد خب اونجا زبان کردی رو یاد بگیرید در مدرسه چه تهدیدی حکومت رو یا ایران رو تهدید میکنه این مشکلش چی هست من از شما چرا حکومت اقید مخالفه یا با قول شما اون سبسیدهایی رو که میدادن به اون مرکز ندادن تا بسه بشه سوال اول در مورد در نگرش سیستم پهلوی یا سیستم پادشاهی پهلوی با موضوع زبان مادری در واقع من تغییر انچنانی نمی نمیبینم یعنی در زمان رژیم پهلوی هم نگرش به زبان مادری همین موضوع بود یعنی من خدمتون گفتم که نیم ساعت برنامه راژیوی رادیو تهران داشت که به زبان کردی و با یکی از گویش های زبان کردی نیم ساعت در روز برنامه پخش میکرد و حتی همین نیم ساعت هم برمیگشت به تحولاتی هم که در منطقه بود یعنی یادمه در اون سالها ایران در بیر یه جنگی شده بود با عراق و با اون موقع دوران حسن بکر و بعدها صدام حسین که سرکار اومد و این جنگ حالا خاصی یا نخواسته ادامه داشت و کوردها در این منطقه در وسط این درگیری تونستن این امتیازاتی بگیرن و از جون این امتیازات هم این بود که چند تا شبکه رادیویی نیم ساعته به زبان کردی رو در منطقه ایجاد کردن راژیو سلندش نیم ساعت برنامه رادیو کرمانشاه، و رادیو راژیو, راژیو و یعنی همیشه موضوع زبان مادری درگیری یه مسئله ده مسئله سیاسی مسئله تمامیت ارزی ایران و این بحثی که ما در یکست سال گذشته در منطقه حالا میانه و بخصوص مناطقی که کشورهای کسی مله در اون زندگی مناطقی که کشورهای کسی رو مله و ملیتهای مختلف در اون کشور زندگی می کنن. این بحث یک نیشن و یک زبان موضوع تازه نیستش یعنی ما در ترکیه هم همین موضوع رو داشتیم یعنی ترکیه از 1917 به بعد و روی کار ترکای جوان عملا ترک که تا اون مقت در یک کشور کسی رو مله بودن عملا همه حقوق ش... بقیه شهروندان دیگه از کوردها از ارامنه از ام... حتی یونانی هایی که در اون منطقه زندگی می کردند همه این حقوق افراد رو زیر پا گذاشت تحت عنوان حفظ تمامیت ارزی و تحت نام یک ملت و یک زبان در ایران هم این بحث از زمان رزاشا شروع شد یعنی شما اگه همه متون دوران قاجار و قبل از دوران قاجار رو نگاه کنید همه متون دوران مشروطیت رو نگاه کنید ایران یک کشور کسیرالمله است یعنی یا نوشته که دولت کسیرالمله ایران یا ممالک محروسه ای ایران یعنی همه تأکید بر این دارن که ایران یه کشور هستش که از ملیت‌های مختلف و از اقوام مختلف درست شده و اینا مثل موزایک های در کنار همدیگه قرار گرفتن درست. حتی احترام و اعتقاد به باورها و باورهای دینی و باورهای مذهبی و زبان تا دوران رزاشا خیلی بیشتر بود تا یعنی به نسبت این رو ارز به این دلست. مفهوم نیستش چون ما در دوران قاجره که از شاید سیاه ترین دوران تعرض به اعتقاد فردی رو ما داشتیم قطعا شما در جریان هستید همده به بهاییا و بابی ها در دوران قاجر بزرگترین شاید صفحه سیاه تاریخ ایران هستش ولی در این حال این بحث ممالک محروسه و بحث ملک و بودن ایران یکی از اصول یعنی شما در بنده هشت مشروطه رو نگاه کنید یعنی یا متون مشروطه رو نگاه کنید کاملا صراحت داری به این موضوع داره. دوران رزاشا عملا ما وارد این قضیه شدیم دوران رزاشا و به یه صورتی چشمم چشمیه با آتاتورک و در, این آن در, در پاکستان هم همین موضوع بود دوران اقبال این موضوع به صورتی تبدیل شد که فکر می که تمامیت ارزی ایران در گروه این هستش که ما ملیت های ایران رو کنار بزنیم و زبان رو به صورت زبان رسمی در بیاریم و هر نوع زبان دیگه رو به هر صورتی که تونستیم بفهمین رو تحت فشار قرار بدیم و این رو ممنوع کنیم در زمان شاه شاید هر از دوستایی که من می شناسم و, و از خانواده خود من بارها به خاطر داشتن کتاب به زبان کردی دستگیر شدن حتی زندانی شدن. علاوه بر اینکه هیچ جا ذکر نشده بود مثل ترکیه که عملا ذکر شده بود که زبان زبان دیگه غیر از زبان ترکی وجود نداره و حتی ملیت دیگه غیر از ملت ترک وجود نداره ولی در ایران چنین موضوعی نبود. همیشه موضوع این بود که ما کوردها، عربها، بلوچا همه اینا یا لورها همه اینا بخشی از ایران هستم ما همه ایرانی هستیم و خب این موضوع بحث سی... بحث سیاسی هستش در زمان جمهوری اسلامی هم همین موضوع هستیم. یعنی در زمان جمهوری اسلامی عملا هر جا موضوع زبان مطرح شده در مقابل مساله تضییع ایران مطرح شده هر جا مساله ملیت های ساکن در ایران مطرح شده مساله تضییع ایران در مقابلش قرار گرفته ولی آیا این موضوع با تجربیات تاریخی که در کشورهای دیگه هستش. مثلا شما در کشور کانادا، در, در سوئیس یا در خیلی از کشورهای اروپایی که الان برنامه سیستم های فدرالیزم دارن اداره میشن، این رنگارنگی و این رنگین کمان زبان، برانگین کمان ملیت ها به یکی از وجوه رنای فرهنگی و رنای سیاسی اون کشور تبدیل شده. درست. دکتر این موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردید. حالا اینو من میخواستم بزنم تا روح همین بحث هستی من این سال از شما بپرسم. من شما الان توی آمریکا هستیم. خب مدرسه که ما میریم باید زبان انگلیسی یاد بگیریم. درسته با اینکه آمریکا زبان رسمی نداره. یعنی کشور آمریکا زبان رسمی نداره تو قانون اساسیش. ولی ما باید بریم انگلیسی یاد بگیریم و انگلیسی بخونیم. فارسی هم تو مدرسه درس نمیدم به فارسی هم درس نمیدم. آیا یعنی به نظر شما یعنی ما همین مشکل یعنی, یه چ... یعنی این اینجوری که ما زبان مادری همونجوری که گفتین حق... یکی از بندهای حقوق بشر هست ولی خب ما تو آمریکا همین چیزی نداری حالا شما اشاره کرد به کشور اسکاندیناوی یک کشوری رو که یه مثال عالی و یه نمونه خوب و ایدئال از این آموزش زبان مادری باشه ضمنی که کشور یک پاچه است متحده یک کشور هست ولی این زبان مادری هم به عنوان حقوق بشر و حقوق اجتماعی افراد رعایت میشه یه نمونه از اون مثال هم برای ما بزنیم بله دو دوتا نمونه رو هم ذکر کردم مسئله کانادا درسته یکی از بزرگترین شاید نمونه های کشورایی هستش که در عین حال که زبان های مختلفی در اون کشور وجود داره یعنی غیر از حتی مهاجرینی که وارد اون کشور شدن چون بحث مهاجرین الان شما با مسئله مهاجرت از سالها بیش در کاندیدا مطرح بوده چینی ها برای خودشون سالها هست در این منطقه هستن و های دیگه هم هستن ایرانی ها هم قطعا در کاندا هستن ولی دو تا دو تا زبان اصلی و در این حال این دو تا زبان هم هم از نظر مذهبی و هم از نظر ملیتی با همدیگه متفاوت هستن بس زبان فرانسوی و ملیت های فرانسوی زبانی که در اون چشم زندگی میکنن و انگلیسی زبان که خودشون الان یه تاریخچه خیلی وسیعی دارند از کسایی که مهاجرت کردن 400 سال پیش، 500 سال پیش به منطقه شمال امریکا تا کسایی که حتی نیتیو امریکن بودن و به اصلا همین ایندو جنس بودن در اون منطقه ولی زبان خودشون شد زبانی که به با اون اسوسیت می شدن یا ارتباط می گرفتن زبان انگلیسی بود این کشور در شاید سی سال و گذشته همیشه با این موضوع مواجه بوده که این دو تا زبان هستی و دو تا ملت اصلی هستی یا در کنار همدیگه میخوان بمونن یا میخوان از هم دیگه جدا بشن درست دولت کانادا شرایط خیلی وسیع رو اومد ایجاد کرد تا بتونه این شرایط رو یعنی تعادل و عدالت رو به جای برسونه که این افراد احساس نکنن که شهروند درجه شندوم هستن رست. و این موضوع به نظر من موفقیت آمیز بوده این حال هم سیستم اداره کشور و مشارکت سیاسی مردم این شرایط را هم تقویت کرد که مردم در قدرت سیاسی اون کشور چه از طریق به سیستم قانونگذاری و چه از طریق سیستم اجرایی در اون کشور سعیم هستن سیستم سیاسی کشور بر اساس فدرالیزم بزرگترین امکان رو به ملیت های ساکن کانادا داد که این احساس شهروند درجه اول رو در برای خودشون داشته باشن حالا شما نگاه میکنید هم سیستم شوراها در کانادا و هم سیستم فدرالیزم به عنوان گاورن کردن برا برا با عنوان حکومت کردن در اون کشور به جای رسید که در انتخابات 8 سال گذشته در کشور کانادا عملا منطقه کبک که بیشتر هم فرانسوی زبان هستن و هم خودشون با یکی از ملیت های غیر کانادایی اسمی برند اینا حاضر نشدن خودشون حاضر نشدن که از کانادا جد جدا بشن و برمان کشور مستقل کبک اینا ادامه حیات بدن و اینا تصمیم گرفتن که در کنار اون کشور بمونن یا در سوئیس در کشور سوئیس هم همین مسئله هست سوئیس خیلی کشور ای هستش که بعد از تحولات عظیمی که در اروپا در طی دویس سال گذشته روی داده اینا مثل خیلی از جای دیگه، مثل حتی ایران هم اگر شما در نظر بگیرید هیچ نوع قانون نوشته شدهی وجود نداشته و در ایران هم وجود نداره که کوردها، آزریها و لورهای، عربها، حالا بختیاری ها بری منطقه شمال ایران اینا به صورت نوشته شده، قراردادی رو امضا کرده باشند که اینا در کنار همدیگه میمونند و اسم این کشور رو میخوان ایران بذارن و زبان رسمی رو میخوان چی بذارن در سوئیس هم به این صورت نبوده سوئیس در از پنجاه سال گذشته شروع کرده به این موضوع که همه اینا رو مدون کنه و قانونمند کنه و احترام به ملیت ها و احترام به زبان هایی که در اون کشور هستش به جای رسیده که شما اگه دنبال این هستید که بخواه ببینید که در یکی از این کشورهایی که بزرگترین امکان زبان زبانهای متنوع وجود, وجود داره این زبان‌ها تا چه اندازه تونستن از حقوق کافی برخوردار بشن که هیچ کدوم از این زبانها اسیمیلیت نشه یا یا از بین نره کشور سوئیس هستش و این اینم بر اساس یک قانون نانوشته صورت نگرفته کاملا مدون و نوشته شده حقوق این کشورها برای زبان مادری تدریس زبان مادری در مناطقی که این ملییت ها زندگی می کنند تا مفته دوران ابتدایی و بعد از دوران ابتدایی به ترزیر این اساسی که شاید بهش میگم فت کردن یعنی به صورت خیلی ملامی وارد این مقن میشه که زبان رسمی که الان دارن کشور سوئیس و نزدیک به زبان دویچها هستش، این زبان رو به نان زبان رسمی خود اونا قبول کردن مرسم. ولی حتی در بعضی از مناطق اگر اینا بتونن آلترناتیوی یا جایگزینی برای مثلا متون فنی در زبان رسمی بتونن پیدا کنن خود اونا میتونن همین زبان رو در دانشگاهاشون تدریس کنن این موضوع رو ما کشور دیگه هم داریم ولی نمونهایی که اندر شما فرمودید فکر همین دو, دو مورد برای این بحث ما کافی باشه بس. و خود همین دوتا موضوع یعنی بحثت این نیست که ما حتی بحث زبان نیست بحث این هست که ما با یک سری انباشت خواست ها در جایی مثل ایران مواجه هستیم که زبان یکی از اون هست. یعنی شما شهروند درجه دوم سوم شما در ایران میتونید کامل این رو ببینید و این شهروند درجه بودن درجه چندم بودن بعد میگرده به سیستم سیاسی و مشارکت مردم ایران مشارکت ملیت های ساکن ایران و اقوام ساکن ایران در سیستم حکومتی که کاملا شما این رو می‌بینید به صورت هیچ عدالتی در اون جامعه نیستش و این, این بحث انباشته خاستا یکی از اون خاستا مسئله زبان هستش در کشور مثل کانادا شما مسئله عدالت اجتماعی رو در اون جامعه می‌بینید. رایت حقوق فردی و ازادیه فردی رو در اون جامعه دارید. و ما اگه بخوام در ایران صحبت کنیم اینا به نظر من همه مثل الزام داره که اینا حتما رعایت بشه تا ما به اونجا برسیم که به نظر من شاید چیزی که میتونه این را ایجاد کنه ایجاد یک سیستم فدرالیزم در ایران هستش بر اساس، حالا میشه فدرالیزم جغرافیایی باشه میشه فدرالیزم بر اساس ها یا بر اساس ساکنان اون منطقه باشه اینا بسیار های تخصیصی هست که فکر کنم در این برنامه شما درست. نگانده درسته دکتر جام من خیلی ازتون ممنونم توضیحات خیلی عالی و خوبی بود و بازم تشکر میکنم که وقتتون رو عصر تون رو در من قرار دادیم بارمان من نمیدونم چرا وقت یه بحثی رو خیلی علاقه من بودم این بس در مورد زبان مادری مطرح بشه چون به نظر من این بحث خیلی کم روش کار شده و الان یعنی که اساساً چرا ما بحث زبان مادعی رو مطرم میکنیم درست. اینه میدونم چقدر اگر،, دخل... اگر خیلی خلاصه بتونید بفرماییت خیلی هم عالی هست و خوشحال میشم خواهش میکنم این رو ببینید خیلی معاقی ما معاقی که مسئله زبان رو مطرم میکنیم با واقعی مسئله تنها زبان نیستش یعنی حالا شما با همین بویش زی و در جریان باشید یه ارتباط عاطفی و ارتباط احساسی خیلی قوی با منطقه شیراز دارید و این زبان رو شما جایی یاد نگرفتید غیر از این از جایی که مادرتون تونسته این رو به شما آموزش بده زبان موقعی که ما بچه هنوز در دوران حاملگی مادر هستش ارتباط عاطفی از همون مرحله شکل میگیره با صحبتهایی که مادر داره و صحبتهایی که دیگران انجام میدن و بعد که بچه به دنیا میاد این ارتباطی که ما تحت عنوان اتچمنت یا ارتباط آتفی که بین مادر و فرزند هستش چه از طریق مرحله شیر دادن و چه از طریق همین لالایی هایی که مادر به کودک منتقل میکنه مراحل اولیه زبان به کودک منتقل میشه یعنی کودک از طریق همین ارتباط زبانی و لالایی که مادر برای اون داره, داره،, داره،, داره مطرح میکنه موضوع هویت و آیدنتیتی این کودک از همون مرحله شکل میگیره زبان مرحله اولش رو از همون جا شروع میکنه این شما این رو در نظر داشته باشید که اولین تمایل کودک به ارتباط با دیگران مثلا در سن هفت ماهیگی این بچه میتونه سی تا واجه یک کلمه رو یاد گرفته باشه که با اون بتونه با دیگران ارتباط بگیره و موقعی که این کودک به سن دو سالگی میرسه بیشتر از ده هزار کلمه رو می در واجه های صوتی یا کلامی یا اصفات خودش داره یعنی به 6 سالگی که میرسه این مجموعه به بالای پونزه هزار تا ها میرسه حالا حساب کنی این بچهی که مثل خود من با پونزه هزار کلماتی که یاد گرفتم و تنها این کلمه هم نیستش یعنی من دستور زبان رو به صورت دستور زبان کردی یاد گرفتم نه این که از صدق مداره صدق مادر کودک عرب هم به همین ترتیب کودک آذری هم به همین ترتیب حالا شما حساب کنید همه ی هایی که من یاد گرفتم همه کلماتی که من یاد گرفتم در شروع سال اول مدرسه که که اولی اول ابتدایی هستش هیچ کدوم از این کلمات و حتی این دستور کلماتی که من یاد گرفتم هیچ کدوم از اینا به درد من نمیخوره و شما رو در نظر بگیرید که در یه جامعه ای که همه چیز کنکور هستش یعنی در ایرانی که در نظر میگیریم که از همون لحظه اول یه مسابقه ای بین کودک کرد آذری و کودک فارس هستش این کودک فارس با مجموعه 15000 لغاتی که داره با دستور زبانی که داره با قدرت شناختی که بر اساس این زبان پیدا کرده خیلی میتونه بیشتر و خیلی سریعتر از یه کودک کرد زبان لر زبان یا عرب زبان یا حتی همین کودکی با گویش‌های دیگه بتونه پیشرفت تحصیلی داشته باشه نیست. این بحثی که الان ما در این مطرم میکنیم با آقا تنها مسئله سیاسی نیستش بحث سرین هستش که ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، مثل ایران که بیش از 50 درصد اون جامعه غیر فارز زبان هستند و این پنجه درصد در مقام مقایسه و رقابت کبرکهی که اینا با همدیگه و با همسالان خودشون در منطق فارز زبان دارند عملایی که از دلایل اگه عدم پیشرفت تحصیلی در اون منطقه رو در نظر بگیریم یکی از مسائل اصلی و مهم همین موضوع هستش درست. این موضوعی که فرزندی که در تیران هستش و دستور زبان فارسی رو از مادر و از محیطش یاد میگیره با فرزندی که در منطقه عربنشین ایران هستش یا منطقه نشین ایران هست یا نشین عمله اینا نمیتونن در یک مسابقه حالا کاملا عدالت رویانه اینا قرار بگیرن و حال این بحث زبان خیلی بحث پیچیده, پیچیده نظرات نمیدن پیاژه نظرات حتی مختلف مثل بیگوتسکی یا نظرات افراد بسه مثل خیلی نزدیکی که الان ما داریم مثل چامسکی رو در نظر بگید میفهمیم که تا چه اندازه رشد روانی و شخصیتی کودک با زبان مادری شکل میگیره و در نظر نگرفتن این زبان مادری و همینطور ممنوع کردن این زبان مادری در مقاطع تحصیلی میتونه تا چه اندازه ضربه های شخصیتی و حتی تستینی و تا هویتی بین این افراد وارد کنه دکتر جان خیلی ممنونم این توضیح آخرتون خیلی خوب بود یعنی یک توضیح روانشناسی بود در واقع که بود روانشناسی و تاثیر این مساله روی شخصیت و رشد کودک هم نشون داد و در این مورد صحبت کردید خوشحال شدم که این قسمت آخر رو هم اشاره کردید که در واقع خیلی خوب گفتید که این موضوع موضوع فراسیاسی نیست موضوعی هست که به رشد شخصیت و موضوع از روانشناسی هم موضوع خیلی مهمی هست. بازم تشکر می کنم ازتون که وقتتون رو در اختیار من قرار دارید و متشکرم ازتون. منم همینطور برادرین روز خوبی داشته باشید و موفقیتتون رو آرزو می کنم. به کودی هر بزید و شعی خوشی. <تصفيق> خیلی ممنونم ازتون روزتون خوش. متشکرم. امیدوارم که از برنامه این هفته ای ما از پادکست این هفته ای ما نهایت استفاده رو برده باشین تا هفته ای آینده و برنامه ای دیگه شاد و پیروز باشید